این داستانک سه زبان یکی بود یکی نبود زیر گنبد آبی آسمون سالها پیش در سرزمین سوئیس اشرافزاده پیری زندگی می‌کرد. او اون تنها یک پسر داشت که چندان باهوش نبود و نمیتونست چیزی چی زیاد بگیره روزی پدرش بهش گفت پسرم هر کاری از دستم بر اومده برات انجام دادم و کوتاهی نکردم اما چون چندان باهوش نیستی این تلاش ها بی بوده حالا تو رو نزد یک معلم با تجربه میفرستم تا شاید اون بتونه چیزی بهت تعلیم بده جوان به شهر دوردست رفت و یک سال تمام با معلم خودش گذروند وقتی یک سال گذشت به خانه پدرش برگشت پدر پرسید خب پسرم چی یاد گرفتی پسر در جواب گفت پدر وقتی سگی پارس میکند من میفهمم چه میگوید پدر داد کشید پناه بر خدا در تمام این مدت فقط همین یاد گرفتی پس باید تو رو نزد معلم دیگهای بفرستم. جوان سال بعد رو هم تحت نظر یک معلم سرشناس دیگه گذروند. بعد از یک سال وقتی برگشت پدر همون سؤال پرسید. پسر هم جواب داد پدر حالا زبان پرندگان را می دانم. پدر عصبانی شد و فریاد کشید عجب آدمی هستی این همه وقت گرانبها رو تلف کردی و هیچ یاد نگرفتی واقعا خجالت نمیکشی جلوی من و این حرفا رو میزنی. با این همه تو رو پیشه یه استاد ماهر دیگه میفرستم اگه مثل دو سال گذشته چیزی یاد نگیری دیگه رابطه ی پدر و فرزندیمون تموم میشه تو رو به خیر و ما رو به سلامت جوان سال سوم و نزد سومین استاد گذروند وقتی برگشت پدر پرسید: "چیا مختی پسرم؟ پدر عزیزم، من این بار زبان قورباغه ها رو یاد گرفتم." پدر طوری عصبانی شد که تا اون موقع سابقه نداشت. چنان فریادهایی میکشید که همه اعضای خونواده و خدمتکارا جمع شدند. پدر گفت این جوان دیگه پسر من نیست اون دیگه حق نداره تو این خونه زندگی کنه به شما دستور میدم اونو از اینجا بیرون کنین هر کدوم از شما زاد اونو بیرون کنه خدمتکارا پسر رو بیرون کردن ولی دلشون نیومد اونو اذیت کنن اونا بدون اینکه به جوان صدمه بزنن اونو رها کردن اونا یه گفزن و کشتن و نزد اشراف پیر فرستادن تا وانمود کنند که جوان رو کشتن جوان سرگردان و غمگین راهی دراز رو طی کرد تا به یک مهمانخونه کوچیک کنار جاده رسید و از صاحب مهمونخونه خواست بهش جایی بده که شب اونجا بمونه. صاحب مهمونخونه گفت: اگه مایل باشی، میتونی شبو در این برج کهنه بگذرونی، ولی از پیش باید بدونی که زندگیت در خطره برج پر از سگ‌های وحشیه که مرتب پارس میکنند. زوزه می کشن و آدما رو دنبال میکنند تمام همسایه ها هم از دست اونها در ترس و وحشت به زر می میبرند ولی هیچکس نمیتونه کاری بکنه و از شر اونها خلاص نمیشیم جوان که از سگ ها نمی ترسید گفت بذارید من نزد این سگا برم فقط چیزی بدین که به سمت اونها پرت کنم مطمئنم به من صدمه ای نمیزنند صاحب مهمون خونه موافقت کرد که اون در برج اقامت کنه مقداری گوشت برای سگای وحشی به جوون داد و اونو به طرف برج راهنمایی کرد. وقتی اشرافزاده جوان وارد برج شد سک ساکت شدند و با حالتی دوستانه دمشونو تکون دادند. بعد هم گوشتی که جوان براشونو برده بود خوردند. حتی یک موه هم از سر جوان کم نشد. صبح روز بعد جبون صحی و سالم از برج بیرون اومد و گفت من زبون سگا رو میفهمم اونا برای من درد و دل کردن و گفتن چرا باعث این همه درد سر شدن اونا جادو شدند تا در برج بمونند و از گنجی که زیر برج پنهان شده حفاظت کنن تا وقتی که گنج زیر برج باشه اونا به اطرافیانشون و جادو همچنان به قوت خودش باقیه من اینا رو از گفتهگوی سکا فهمیدم همه از شنیدن این راز خوشحال شدند. صاحب مهمون خونه به جوان گفت: اگر بتونی اون گنج گنجو از برج در بیاری، من تو رو به فرزندی خودم قبول میکنم. جوان دوباره داخل برج رفت و از مکالمات سگها به محل گنج و راه رسیدن به اونها پی برد و خیلی زود با صندوقی پر از طلا نزد صاحب مهمانخانه رفت. تلزم شکست. از اون لحظه به بعد از پارس سک ها خبری نبود و مردم اون سرزمین از شر اون کابوس ترسناک خلاص شده بودند کمی بعد جوان تصمیم گرفت به روم سفر کنه در راه به باطلاقی رسید که در اون تعدادی قورباغه با صدای بلند قورقور می کردند اون ایستاد و به صدای اونا گوش داد اون چه از سر و صدای قرباقه ها فهمید اونو به فکر فرو برد و در تمام طول سفرش نگرانش کرد. وقتی وارد روم شد درست موقعی بود که پاپ مرده بود و مردم مردد بودند که چه کسی جانشین او میشه. بالاخره تصمیم گرفته شد هر کسی نشانی از آسمان و پیامبران داره برای جانشینی پاپ انتخاب میشه. در همون لحظه که این تصمیم و گرفتند جوان وارد کلیسا شد. بلافاصله دوتا تا کبوتر سفید مثل برف به طرف او پرواز کردند و یکی روی شانه راستش و دیگری روی شانه چپش نشست. کشیش حاضر در کلیسا با دیدن این صحنه گفت این نشونه از آسمانه و بعد از جوان پرسید آیا مایل جانشین پاپ بشه؟ جوان ابتدا تردید داشت چون باورش نمیشد که شایسته همچین مقام بزرگی باشه. ولی کبوتر را که اون زبونشونو میفهمید در گوشش گفتند بهتره طبق نظر مردم این مقام رو بپذیره. بالاخره اون به خواسته کشیش جواب مثبت داد. جوان را قسل دادند و برای این مقام تبرک کردند. در واقع پیشبینی قرباقه ها که آنقدر نگرانش کرده بود درست از آب در اومد. اونا بینی کرده بودند که در عرض کمتر از یک ماه او به مقامی روحانی میرسه. در نتیجه آشنایی او با زبان سکها، قرباقه و پرندگان مانند دانشی که دانشمندان از اون برخوردار بودند براش مفید واقع شد و زندگیشو تغییر داد. سفر به دنیای پر رمز و راز ها